آنان که به قیب ایمان می‌آورند و نماز را برپا پا و از آن چه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند.